بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود نونحالان مرکز علوم قرآنی سوران از مرکز علوم قرآنی سوران تقدیم میدارند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله الذین معاهود شد و للكفار رحمان بینهم صلّى الله العظيم. ای خالق ارز السماء اي و سماه، ای رازق شهوک داد، کردم بسی جرم و خطا، استغفرالله العظیم، کردم بسی جرم و خطا، استغفرالله العظیم. ای خالق ارز و استغفر الله العظيم کردم بسی این جرم و خطا استغفرالله العظیم کردم گناهی بی دانم که بعد کردم چه بعد اینسته بردم ای احد استغفر الله این است ویردم ای, ای احد استغفرالله العظیم در حب دنیا روز و شب سرگشت آم در طلب یارب رب بر من غذب استغفر الله العظیم یارم مکن بر من غذب استغفر الله العظیم ای خالق ارزو و سما ای رازق شاه و گدا کردم بسی جرم و خطا استغفر الله العظیم کردم بسی جرم و خطا استغفر الله العظیم کائل تنم از یاد ساکت زبانم از نتا زین غم سی او همشدوارم استغفر الله العظیم زین غم سی هم شد همشدوارم استغفر الله العظیم چشمم ز بحر مالو زرد دارد بر هر جانب نظر تا در کجا یا مگر اگر استغفر الله العظیم تا در کجا یا بم اگر العظیم ای خالق کردم بسی جرم و خطا استغفر الله العظيم پایم بکار دنیاوی باشد عجب چامک قوی کشد براه معنوی استغفر الله العظيم کشد براه معنوی استغفر الله العظيم, استغفر الله العظيم, استغفر الله العظيم از خردن غرسی موزر کاغل بخوفتم تا سهر از روز محشر بی خبر استغفر الله العظیم از روز محشر بی خبر استغفر الله العظیم ای خالق ارز سما ای رازق شاه و یدا کردم بسی جرم و خطا استغفر استغفرالله العظيم شاه باغ قی مصطفی همچاریا و ربوصفا ما را مگر بینوا استغفرالله العظیم ما را مگر دان بینوا استغفرالله العظیم ای خالق عرض سما ای رازق شاه جدا کردم بسی جرم و خطا استغفرالله العظیم کردم یور مو خطا استغفر الله العظیم شاہ بہ حق مصطفی ہم چوریاں رے بصفا ماور مگر دن بینوا استغفر الله العظیم ماور مگر دن بینوا استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم تکبیر wwwlum